سلام و به دانشکدی کوچک کتاب مقدس و این سری از پیام های سر سرکو خوش اومدید. کتاب مقدس میگه که خدا در ایسای مسیح دنیا رو با خودش آشتی داد و دیگه گناهان اونها رو بیاد نیاورد. این در واقع خبر خوبیه اما صبر کنید خبرهایی بیشتری هست. خدا شاگردان ایسای مسیح رو دعوت کرد تا خادمین سوال و آشتی هم باشن. اما معنی این چیه؟ خب، به دقت گوش کنین چون امروز معلم ما در درس امروز اون رو توضیح میده، با هم گوش میکنیم. به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. به حال ماتم ماتمزدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. خوشابهال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند زیرا ایشان سیر خواهند شد خوشابهال رحم کنندگان زیرا ایشان رحمت خواهند دید خوشابحال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید خوشابحال صلح کنندگان زیرا ایشان فرزندان خدا خند خواهند شد اینها هفت خوشابهال از 8 خوشابهال عیسی هستند که توسط اونها تعالیمی رو شروع کرد که به اونها موعزه سر کوه میگیم دیدیم که این یک گرده همایی در خلوت بود که در اون جلسه او شاگردانش رو معمور میکرد که بخشی از راه حل و بخشی از جواب او برای مشکلات جمعیت انبوه گردامده در اطراف دریای جلیل باشند او به اونها خدمت میکرده شاید اونها هزاران نفر بودن او از جمعیت کناره میگیره و این جلسه خلوت رو کمی بالاتر از دامنه کوه با شاگردانش ترتیب میده او شخصا مردم رو دعوت میکنه که در این گرده همایی به او ملحق بشن و اساس تعالیمی که در متا پنج، شش و هفت داده شده همونطور که دیدیم این بود که به شاگردانی که برای این گرده همایی دعوت کرده بود نشان دهد که چگونه آنها میتوانند نمک روی زمین و نور جهان راه حل او و جواب او به مشکلات این جمعیت شوند که انواع مشکلات رو داشتند جمعیت نماد دنیا با انواع مشکلاتشان هست و افرادی که با او در اون جلسه بودند نمادی از راه حل او و جواب او برای مشکلات این دنیا بودند ما بارها رفتارهای زیبایی را که او با اونها تعالیمش را شروع میکنه ملاحظه کرده ایم. گفتیم که چهار تا از اونها رفتارهایی مربوط به آمدن هستند و چهار تا از آنها رفتارهایی مربوط به رفتن هستند. بین خوشابهال چهارم و پنجم تقریبا یک خط روحانی هست که رفتارهای آمدن رو از رفتارهای رفتن جدا میکنه. چهارتای اول مربوط به آمدن نزد او و هماهنگی با او هست و داشتن رفتار درست نسبت به او و نسبت به خودمان هست. اینها رفتارهای آمدن هستند. بعد وقتی با خوشاب حال رحم کنندگان شروع می کنیم یعنی همون کسانی که پر از محبت بیقید و شرط خدا برای این مردم دردمند و دنیای گم شده هستند شما چهار رفتار بعدی رو می بینید که بهشون رفتارهای رفتن گفتیم. اگر می خواهید رحم کننده باشید کانالی برای محبت بیقید و شرط خدا نسبت به چه کسانی اون محبت جاری خواهد شد. ببینید لازمه این پایین آمدن شما از کوه و برگشتن به داخل جمعیت هست. وقتی محبت می کنید با قلبی پاک محبت می کنید. حالا ما وقتی به هفتمین رفتار در این درس نگاه می کنیم خواهیم دید که این همینطور رفتاری هست که باید درست در میان انبوه جمعیت و مشکلات اونها نشون داده بشه. به حال صلح کنندگان این هم یکی از رفتارهاست که در درس امروز برون تمرکز خواهیم کرد همینطور ملاحظه کردیم که این خوشابهال ها با همدیگر جفت هستند آنها اونها می دو دوتا دوتا با هم باشند خوشابهال فقیران در روح که به خاطر فقر روحیشان ماتم میگیرند و قصه میخورند آن دو با هم هستند خوشابهال فروتنان کسانی که می آیند و یوغ مسیح را برمیگیرند و بعد وقتی لگام را پذیرفتند وقتی یوق مسیح رو در زندگیشون پذیرفتند، اونها گرسنه و تشنه ادالت خواهند شد همونطور که پولس رسول شد اونها گرسنه و تشنه این میشوند که بدانند خداوند از آنها چه کاری میخواهد و گفته شده او آنها را سیراب میکنه. بعد اونها رحیم می شوند. یعنی کانال محبت بی و شرط خدا میشوند. و در حالی که اونها این محبت بی قید و شرط خدا رو نسبت به دردمندان و گمشدگان این دنیا نشان میدن این کار رو با قلبی پاک انجام میدن قلبی که تمامی گناهان و خودخواهی ها و تمامی انگیزه های پنهانی از اون جدا شده این هم با خوشابه حال رحم کنندگان جفت هست وعده این هست کسانی که با قلبی پاک محبت میکنن خدا رو خواهند دید، یعنی اونها کار خدا رو خواهند دید، چون خدا توسط اونها کار میکنه و محبتش رو توسط اونها جاری میکنه. رفتار هفتم خوشابه حال دهندگان هست. کلمه واقعیش خوشابه حال آشتی دهندگان هست. خوشابه حال کسانی که معموران آشتی خداوند هستند. آشتی یکی از کلمات عظیم انجیل هست. ما بعدها اون رو در رسالات پولس رسول می بینیم. من معتقدم که یکی از بهترین اظهارات انجیل مسیح که به معنی خادم انجیل هست در دوم قرنتیان باب پنج هست در این متن باشکوه که از آیه دوازده یا سیزده شروع میشه ما یکی از عظیمترین بیانات پولس رسول رو میبینیم که درباره انجیل و خادم انجیل هست او سراحتاً به تهمتی که به او زده بودند که ابله و دیوانه هست پاسخ میده چیزی که اونها میگفتن این بود که او عقل خود را از دست داده و او از خودش در این مورد دفاع میکرد اونها هم پولس و هم عیسی رو متهم می می‌کردند که عقلشون را از دست دادهند کلمه اصلی که برای دیوانه به کار برده اند کلمه اکسنتریک یا عجیب و غریب هست. در واقع همون چیزی که پولس رو به اون متهم می‌کردند عیسی رو نیز به اون متهم میکردند. اونها در مورد عیسی می‌گفتند که عقلش را از دست داده و در مورد پولس میگفتند که عجیب و غریب هست. چیزی که اونها منظورشون بود این بود که هر کسی مرکزی داره که زندگیش حول اون میچرخه چیزی که اونها در مورد پولس و عیسی میگفتن این بود که تو مرکز دیگری داری پولس اونها به خداوند میگفتن تو مرکز دیگری داری که زندگیت حول اون میچرخه این همون مرکزی نیست که زندگی ما پیرامون اون میچرخه پس تو از مرکز خارج هستی زندگی تو مرکزی متفاوت از زندگی ما داره وقتی پولس از خودش در مقابل این اتهامات در دوم قرنتیان 5 دفاع میکنه او اینطور میگه شواهد زیادی هست که منو ملزم میکنه شما حق دارید من طبق میارهای شما عقل خودم را از دست دادم من مرکز دیگری دارم که زندگیم بر حول محور اون میچرخه سالهای سال زندگی من حول محور خودم میچرخید اگر اون مربوط به پارسایی بود که در مورد خودم میپنداشتم زندگی من حول محور خودم میچرخید اما وقتی مسیح را در جاده دمشق ملاقات کردم زندگی من مرکز دیگری پیدا کرد مرکزی که زندگی من اکنون بر حول محور اون می‌چرخه مسیحه او از زندگی خودش از نظر رابطه با مسیح صحبت می‌کنه او از عبارتهایی مثل به وسیله مسیح در مسیح برای مسیح و توسط مسیح استفاده می‌کنه حالا تمام زندگی او حول محور مسیح میچرخه و او میگه این دفاعیات رو به این دلیل نمی‌کنه که خودش نیاز به دفاع داره. بلکه میگه میخواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخار کنید تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص میبالند و نه به باطن او جواب بدهید. وقتی او از سلامت عقل خودش دفاع میکنه میگه اگر ما عقل خود را از دست داده این به خاطر خداست. و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است چون که این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد پس همه مردند و برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست بنابراین ما بعد از این هیچ کس را به حسب جسم نمیشناسیم. بلکه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم الان دیگر او را نمی پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت. اینک همه چیز تازه شده است از این نقطه به بعد به استفادهی که از کلمه آشتی دادن شده توجه کنید او میگه و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد و خطایای ایشان را به دیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ کند. پس به خاطر مسیح استدعا می کنیم که با خدا مصالحه کنیم. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم پس چون همکاران او هستیم التماس مینماییم که فیض خدا را بیفایده نیافته باشید زیرا میگوید در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم اینک الهال زمان مقبول است اینک الان روز نجات است شما میتونید این متن با شکوه پولس در دوم قرنتیان رو به همراه خوشا به حال هفتم قرار بدید چون وقتی عیسی گفت خوشا به حال صلح دهندگان چیزی که در واقع می میگفت این بود خوشا به حال آشتی دهندگان خوشا خادمین صلح و آشتی پولس در دوم قرنتیان پنج به ما میگه وقتی عیسی بر روی صلیب مرد خدا در آن لحظه در مسیح دنیا رو با خود آشتی میداد. دیگر آنها را مسئول خطایایشان نمی دانست چون تمام این خطایا را بر مسیح گذاشت. اشعیا گفته و حال که به سبب تخصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. اشعیا به این وسیله میگه که تمام مجازات‌هایی که ما به خاطر گناهانمان لایقش بودیم بر او نهاده شد. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد پولس هم همون چیز رو میگه اما او اون رو اینطور بیان میکنه وقتی مسیح بر صلیب مرد این امکان رو برای خدا فراهم کرد که با این دنیا آشتی کند و این دنیا را با خود آشتی دهد بزرگترین مشکلی که کتاب مقدس با اون اشاره میکنه این مشکل هست یک جدایی بین انسان و خدا هست خدا و انسان به وسیله گناه هم بیگانه شدن این داستانی از پیدایش سه هست اون یک خبر بد هست اما خبر خوش انجیل این هست که خدا با انسان آشتی داده شد و این امکان رو فراهم کرد که هر مرد و زنی پیر یا جوان در تمام این دنیا با او آشتی نماید او این امکان را زمانی فراهم کرد که مسیح بر روی صلیب مرد از لحظه مرگ مسیح بر روی صلیب خدا گناه گناهکاران را به حساب آنها نمیگذارد او با آنها آشتی داده شد و این امکان را برای آنها فراهم کرد که با او آشتی کنند این معجزه ای بود که در راه دمشق برای پولوس اتفاق افتاد و او واقعا تا آن زمان با خدا بیگانه بود پولس وقتی سعی میکرد نسل اول کلیسا رو به سوی مرگ بکشونه با خدا نبود. اما وقتی او عیسی مسیح رو در راه دمشق ملاقات کرد با خدا آشتی داده شد. او معجزه آشتی رو تجربه کرد. اما در این حال او نه تنها معجزه ای رو تجربه کرد بلکه معموریتی هم به او واگذار شد. اون معموریت خدمت آشتی بود. همچنین به او پیغامی داده شد. این پیغام آشتی از لحظه ای که در راه دمشق برای پولوس این اتفاق افتاد از لحظه ای که او این معجزه آشتی رو تجربه کرد و این پیغام و خدمت آشتی رو دریافت کرد به سراسر این دنیا رفت و موعظه کرد که به ما بگه با خدا آشتی کنید. فیض خدا رو بیهوده هدر ندهید. با خدا آشتی کنید. به خبر خوش اعتماد کنید که او با شما آشتی کرده و برای شما این امکان رو فراهم کرده که با او آشتی کنید این خبر خوش او بود فقط با او آشتی کنید این پیغام و خدمت و معجزه ای بود که او شخصا تجربه کرد حالا این چیزی بود که عیسی در آیه نه متا 5 از اون صحبت می کرد اونجا که هفتمین حال رو می ده صلح دهندگان دوباره او میگه به پایین کوه نگاه کنید اون مردم پای کوه رو با تمام مشکلاتشون می‌بینی، اینجا دلیل دیگری برای مشکلات اونها هست. اونها بیگانه هستند. اونها با خدا بیگانن، اونها واقعا با خدا در آشتی نیستند یک جدایی بین اونها و خدا هست. اونها هرگز این خبر خوش رو نشنیدند که خدا با اونها آشتی کرده. فقط کافی اونها به با اون باور کنند. و تنها چیزی که اونها نیاز دارند اینه که، اون پیام آشتی رو بشنبن. البته در اون زمان این پیغامی بود که می خدا وقتی مسیح بر روی صلیب بمیرد با آنها آشتی خواهد کرد. ما در این سوی صلیب هستیم. پس خبر خوش اینه که خدا پیش پیش دنیا رو با خودش آشتی داده. از جمله شما. آیا تا کنون شخصا به اون خبر خوش اعتماد کردید و با او آشتی کردید؟ آیا شخصا آشتی با او رو تجربه کردید؟ حال سرخ دهندگان خوشابهال صلح دهندگان در واقع معنیش اینه حال خادمین آشتی نمیدونم آیا فهمیدید که انجیل ایسای مسیح خبر بدی نیست اون خبر خوبیه روشی که بعضی ها انجیل رو بشارت میدن چنون به نظر میاد که اون خبر بدیه بعضی از مردم عملا میگن آیا خبر رو شنیدید؟ شما به جهنم خواهید رفت و تا عبد در اونجا خواهید سوخت. خوب این خبر خوبی نیست، اینطور نیست؟ این خبر بسیار بدیه، اما انجیل خبر خوب هست انجیل پیغام آشتی هست، معجزه آشتی و خدمت آشتی هست خبر خوب اینه که شما مجبور نیستید به جهنم برید چون عیسی مسیح به جای شما به جهنم رفت و برگشت تمامی گناهان شما به حساب او گذاشته شد. بنابراین اونها به حساب شما گذاشته نخواهد شد. شما مجبور نیستید به جهنم برید چون همین الان میتونید با خدا آشتی کنید. خدا پیشا پیش با شما آشتی کرده. او دو هزار سال پیش با شما آشتی کرده. آیا اینو باور میکنید؟ آیا با او آشتی میکنید؟ این واقعا خبر خوشی هست. یادم داستانی در مورد کشیشی در ارتش شنیدم. او کسی بود که با ارتش سفر می کرد. مردی می گفتفت وقتی که برای مبارزه در جنگ بوده مجروح میشه. او و تعداد دیگری از مجروحین زیر آتش دشمن بودن. او می گفتفت کشیشی رو دیدم که بین آدم ها می چرخید از این یکی میرفت طرف اون یکی من از فاصله دورو رو می دیدم او به اون سربازان چیزهایی می گفت. من امیدوارانه منتظر بودم که به من برسه به این دلیل که داره چیز خوبی رو به اونها میگه خود کشیش هم مجروح شده بود ولی همچنان برفتن از این یکی به اون یکی ادامه میداد قبل از اینکه به من برسه کشته شد اون هیچ وقت به من نرسید تا ببینم چی میخواسته به من بگه و اینکه به بقیه چی گفته این مرد در ادامه گفت فکر میکنم تو میدونی که اون کشیش به بقیه بچه ها قبل از مرگ چی گفته بوده آیا تو میدونی خوب این فرصت عالی برای یک خادم آشتی بود اینطور نیست من فرصتی یافتم تا از دوم قرنتیان پنج این آیات رو در مورد معجزه آشتی پیام آشتی و خدمت آشتی با او صحبت کنم به او گفتم ببینید من ایمان دارم که اون کشیش یه پیام برای مردهایی داشته که آخرین سانیه های عمرشون بوده او یک پیغام برای افرادی که مرده بودن داشته و یک پیغام هم برای مردایی که زنده مونده بودن و اون پیغام این بوده با خدا آشتی کنید خدا آماده است تا با شما آشتی کنه این همون چیزیه که عیسی گفته خوشا به حال آشتی دهندگان زیرا پسران و دختران خدا خنده خواهند شد پسران و دختران حقیقی خدا خادمین آشتی هستند الهیدانی این رو گفته و من از اون نقل قول می کنم اراده آشتی دهنده این است که آشتی داده شده باید عامل و وسیله ای برای آشتی در زندگی کسانی باشد که آشتی اند. بذارید تکرار کنم. اراده آشتی دهنده این هست که آشتی داده شده باید عامل و وسیله ای برای آشتی در زندگی کسانی باشد که آشتی نکردند. این چیزی هست که پولس در دوم قرنتیان 5 میگه و همون چیزیه که، ایسا در هفتمین خوشا گفته. او صلح دهندگانی تعیین میکنه. او در بالای کو خادمین آشتی رو منصوب میکنه. وقتی او میگه خوشا آشتی دهندگان منظورش همین هست. چاک کلسون کتابی نوشته تحت عنوان خدای مهربان. در اون کتاب او در هر فصل پشت سر هم مثالهایی هایی میده از چیزی که فکر میکنه به معنی دوست داشتن خدا هست. یک باب مربوط به پزشکی یهودی در روسیه هست که مرتکب اشتباهی سیاسی شده و به سیبری تبعید شده بود. وقتی که در سیبری بود، به نظر می‌رسید که ایمان یهودی او کمک زیادی به او نمی‌کرد. مذهب او به او کمک نمی‌کرد. به عنوان یک پزشک، او را مجبور می‌کردند کارهایی در تبعید بکنه که برخلاف وجدان هر دکتری هست. و او برای زنده موندن و داشتن زندگی آسان این کارها رو انجام میداد. اما به همین دلیل از خودش نفرت داشت او شروع کرد به نشون دادن این نفرت به کسانی که این کارها رو در اون زندان با او می کردن یک شبو شنید که یک ایماندار در تخت بالایی او دعای شاگردان رو زمزمه میکنه. وقتی او به این قسمت رسید که می گفت های ما رو ببخش همانطور که ما قرزداران خود رو می بخشیم گناهان ما رو بیامرز همچنان که ما کسانی را که به ما گناه کردن میبخشیم او قبلاً چنین چیزی نشنیده بود. این بسیار او رو جذب کرد تا جایی که تا نیمه های شب او به همراه اون ایماندار این دعا رو زمزمه میکرد. و در اونجا در نیمه های شب اون ایماندار در تخت بالایی این مرد رو به مسیح هدایت کرد. او رو به تجربه ی معجزه آشتی هدایت کرد. روز بعد دکتر روی کسی جراحی کرد و اکثر اوقات کسانی را که او جراحی میکرد زنده نمی موندن. این سوای از تنبیهات بود او غالباً مجبور می شد مجوزهایی رو امضا کنه که گواهی میکرد محکومین می توانند سلولهای تنبیهی رو تحمل کنند در صورتی که میدانست آنها نمیتونن تحمل کنند اما چون معجزه آشتی رو تجربه کرده بود دیگه نمیتونست این کار را بکنه روز بعد به مسئولین اطلاع داد که دیگه این کار رو نخواهد کرد بعد مردی رو جراحی کرد و بعد وقتی غروب اون روز اون مرد از بیهوشی خارج شد او پیغام آشتی رو به اون مرد داد و اون مرد هم معجزه آشتی و نجات در عیسی مسیح رو تجربه کرد اون شب وقتی دکتر روی تختش دراز کشیده بود او رو تا حد مرگ کتک زده بودند اونها با چیزهایی که برای شکستن آجر از اون استفاده می بر سر او می کوبیدند. مردی که او اون روز عمل کرده بود عملاً به خاطر سرطان شکم عمل شده بود و به احتمال زیاد زنده نمی مند. اما او زنده موند و کتابهایی نوشت و با تمام دنیا از چیزهایی که در اون تبعیدگاه اتفاق میافتاد صحبت کرد نام او الکساندر سولجنیستین بود نویسنده معروف روسی به این ترتیب بود که او معجزه آشتی و معجزه تولد تازه رو تجربه کرد چون شخصی آشتی کرده تبدیل به خادم آشتی برای او شد این چیزی هست که منظور اون الهیدان بود وقتی که گفت اراده آشتی دهنده این هست که آشتی داده شده باید عامل و ای برای آشتی در زندگی کسانی باشد که آشتی نکردند در اون اردوگاه اوسرا چه کسی دیگری میخواست خادم آشتی برای الکساندر سولجنیستین باشد. به جز کسی مثل اون جراح که یک شب قبل با خدا آشتی داده شده بود. منظور عیسی وقتی گفت خوشابه حال سول کنندگان همین بود. خوشابه حال آملین آشتی در زندگی کسانی که آشتی نکردند. گفتیم که این خوشابه حال ها با هم جفت هستند. این یکی با خوشابه حال بعدی با هشتمین خوشابه حال جفت هستند. خوشابهال زحمت کشان برای ادالت. زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. و به این دلیل که هفتمین خوشابهال این هست. خوشابهال معموران آشتی. و هشتمین خوشابهال این هست. خوشابهال کسانی که در راه نیکی جفا می بینن. زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. توجه داشته باشید که فقط خوشابهال جفا دیدگان نیست. کسانی که به هر دلیلی جفا می بینن. مخصوصاً کسانی که به خاطر کارهایی که خودشون باعث میشن بلکه میگه خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا میبینند به خاطر بشارت انجیل جفا میبینند اونها خودشون رو با عیسی معرفی میکنن میتونید ببینید که چرا این دو خوشا حال با هم همراه هستند خادمین آشتی جفا میبینند چون به می میروند که بیگانگی هست اونها جایی میرند که درگیری هست اونها جایی میرند که مردم آشتی نکرده در اونجا هستند. کسانی که با هم جنگ میکنند به مناطقی فکر کنید که در اونجا جنگ و جنگ داخلی و درگیری های شدید هست. خادمین آشتی به اونجا میرند و اون جایی هست که خطرات عظیمی داره. به این دلیل که این دو خوشابه حال با هم هستند. خوشابه حال دهندگان زیرا ایشان فرزندان خدا خانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می بینن زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است عزیزان امیدوارم که بخواید عضوی از پادشاهی خدا باشین دامی کنیم که این تعالیم و درسهای چالش برانگیز به شما کمک کنه که در شناخت معنی پیروه راستین ایسای مسیح بودن رشد کنین باشد که خدا به شما شادی آرامش و جسارت در پیروی از خداوندمون ایسای مسیح عطا کنه دعا میکنیم که ضمن اینکه به دنبال شناخت بهتر اون و شناساندن اون به دیگران هستین براکات ابدی او بر شما و خانواده شما باشه تا برنامه بعدی می شما رو به چالش بکشم که کسانی رو دعوت کنید شاید یک دوست یا همسایه که در ادامه مطالعه تعالیم خداوندمون ایسای مسیح با ما همراه باشد